مرز شد در بخص حجیت خبر گلاه در حجیت هر بخصی دو تا اشکال محوم و استاد نهال فرمدن البته یکی اشکال روی موانی شیعه و روی به اصطلاح محیط شیعه وارد میشه و اون این که اگر خبر حجیت باشه لازمش اینه که شامل اخبار سهل مرتضا دردم هجیت خبر بشه که دیروز توضیحش بذاشت ولی بعد این اشکال مخصوص هست به دنیا شیعه ربطی به خبر مفتقا نداره و یه اشکال دیگه لا شامل اهل سنت هم میشه بعضی از بزرگان شیعه هم در سابق ناشتن دیروز و که به حال مزاجین هم بساید نبود نشد بعضی کلمات پیدا کردیم بیشتر کلمات کسانی که سابقا این اشکال بیشتر مصرف کردن مجال نشدیه حالا این بحث تاریخ مساعده رو فعلا امروز باشه برای یک خیلی و اما اون مقداری که الان در کلمات علمای متأخر شیعه آمده یعنی به اصطلاح از زمان مرحوم شیخ انسایی در حوضه های ما قبلن ما آمده اما در حوضه های ما دیگه مطرح شده و مخصوصا این بزرگان اخیر ما سعی کردن را چه با جواب بدن اشکال اخبار محل واسکت و دیروز عرض شد که ما این مطلب رو فعلا از کتاب مرمو استاد که از صفحه دیویست از این مصباح و رسول متعرف شدن میخونیم چونیشونی تقریبا مطالبی بود در اصول از زمان شیخ تا حالا بود زمانشون بوده ایشون جمع جور کردن اشکال احس کردیم اشکال اخبار من به دو تقریب میشه به یک تقریب بقول ما ها از اول سند اشکال پیدا میکنه به یک تقریب از آخر سند اشکال پیدا میکنه اما تقریب اول یعنی دو به دو وجه وجه اول که از اول سنده و مزموم استادمشون اول آوردن اون اینه که لازم میاد تقدیم و محق و تخیر حالا یا اینجوری تعبیر بکنی یا لازم میاد که اصواف موضوع رو با حکم بکنیم و این خودش غیر سهیه اصواف موضوع چون حکم و متاخیر از موضوعه یه روز درست کردیم مراد از موضوع در این اصطلاح اون متعلق و متعلقه و اصطلاحی در موضوع به این معنا و این متعلق و متعلق طبیعتش اینه که باید به نحو مفروض وجود باشه طلب هم به تعلق نمیدیره و قول بعض فوق دائره طلبه بله متعلق بهش طلب تعلق میگیره و باید موجود نباشه به عکس اون. مثلا وقتی گفت اکمل عالم اولا باید عالم موجود باشه بعد اکرام رو ایجاد بکنه پس باید عالم مفروض الوجود باشه محقق باشه بعد ایشان اکرام رو ایجاد بکنه لذا به اکرام میگن مطلوب الوجود وجود یا میگن موضوع و بعضا بیر میگن موضوع الاستلاح لی اینجا مرادهای خیوم دومیه یا دقیقتر متعلق حکم حکم هم مفاد حیعته که وجود باشه پس یکی حکم داریم یک متعلق داریم یک متعلق المتعلق بریم حکم تعلقش و همون متعلقه متعلق باز معدوم باشه تا با حکم ایجادش رو کنیم بعد از این از اراده مولا اون ایجاد بشه باید معدوم باشه به خلاف متعلق المتعلق باید موجود باشه که دو تا با همه اون باید موجود باشه عالم باید موجود باشه تا ما او رو اکرام بکنیم اما اگر موجود نبود این امر اکثر به عالم این نیست برو یک عالم ایجاد بکن بعد اکرامش کن این امر مفادش این نیست مفادش ایجاد عالم نیست مفادش این است که عالم موجود رو اکرام بکن نه اینکه مفادش این باشه و لذا اگر فرض کردیم کسی گوه اگر ما این آقار اکرام بکنید مثلا پول بشه دیمیان آلم میشه آیا آره این اکرام واجبه؟ اکرامش میکنیم تا آلم بشه خیلی اکرامی واجب نیست باید آلم باشه بعد اکرام بشه قادش اینطوره. طوره و بناشون اینه که رتفه حکم بعد از رتفه موضوعه مرادشون در اینجا از حکم وجوب اکرام مرادشون از موضوع آلم در هروسی است که این اصلاحات روی فراهم می‌کنه حالا تقدم موضوع بر حُف بعضی از قبایل تقدم علت بعضی و از معلول و از تقدم موضوع بر عَرَض جوهر بر عَرَض بعضی مثلا خودش در عالم اعتبارات قامیی صرف خاص خودش رفتی به اونها نظره به هر حال این قاعدش اینطوره پس سر به این قاعده ما باید اول موضوع محقق بشه بعد از تحقیق موضوع حکم بیان ما اگر صدقل عادل داشتیم یا مثلا بخواییم باعی نبع تمسک بکنیم نبعال آدل یغبن این اینطوری داشته باشید این نبعال عادل این موضوعه این یغبن وجوب قبول پکیم اگر که اول باید نبعال عادل محقق بشه بعد حکم بیان خب اینجا اینطور طور می گرد نبعال آقی عادل با اول اسناد وجدانیه به تعبیر آقای خویی بل وقت المقام الخبر المهرزد نابل وجدان هو خبر کلینی مثلا کلینی یه حدثن علی بن ابراهیم این خبر نبعال آدل خب این یو سبزم اما علی بن ابراهیم یه سنی عبی کی گفت این نبعال آدل این حدثن عبی کی گفت بعد از اینکه نبع العادل یصدد و اجرا کردیم این میشه نبع نبع العادل یعنی اگر به خاطر وجوب تاثیر کلی نبود این نبع العادل میسازند اصل نبع بودنش ورشد ما باید اول بگیم نبع العادل یصدد شامل خبر کلی میشه بعد از اینکه شامل خبر کلی شد کلی کی میگه احادث علی بن ابراهیم این نبع العادل بعد از اینکه شامل شد قول علی ابن حدثن حدثنی عبی میشه نبه عاده پس موضوع بعد از وک میاد اول باید یقبل بیخاست تا بعد موضوع محقق بشه و همچنین بعد از اینکه این شد نبه الا عاده ابراهیم نحاشمی که فدر ایشونه میگه حدث نوفلی بعد از اینکه نبه الا عاده یصدی یا یقبل بعد از اون آمد گفتیم اینم نبال عادله پس در اینجا مثل همون مثالی که من عرض کردم شما به کسی اکرام بکنید تا اون عالم بشه یعنی اون وجوب اکرام رو بگیری. بگیر اینقدر این اکرام بکن تو عالم بشه. خب همین چیزی از اکمل عادل در نمیاد وجوب اکرام چه مطلبی در پس اشکال اینه که اون اول سند مهر از اوننا وجدان و اون دومی دو و سرومی در اخبار معل اگه واسطه نباشه خب مشکل نداره فرض کن زراره به ما مگه ما مصادق اینطور طور فرمون مشکل نداره اما اینجا مشکل داره در اخبار معل واسطه اولیش محرزان بلوشدان دومی دو و سرومی محرزان به تحبت یعنی اولاً باید حکم شاملش بشه تا موضوع محقق باشه و عرض کردیم اول باید موضوع محقه باشه تا حکم شاملش بشه لازم میاد با اول آلا وزیاد دور لازم میاد ما تقدم محضور دور با قول وزید. اون قائله دور تقدم محقه و ترخیه و یا لازم میاد تقدم موضوع بر حکم لازم میاد که با حکم خود موضوع رو بسازیم انا بیرین مختلفی دارن این راج به اشکا مرموم های خویی دو تا جواب دازن اولا جواب نقضی میدین که شما میگرد اقرار رو اقل و علا انفرسه جایز و درسته میدونی حالا یک کسی الان گفت من الان اقرار میتونم که صبح اقرار کردم این کتاب ملک زیده اقرار به اقرار این قبول میشه با این که اول باید اقرار اولیش تصدیق بشه اقرار رو اقل و علا انفرسه جایز بشه تا دوبومی سه برو ک یا بیینه بر بیینه دو نفر عادل شهادت میدن که ما شنیدیم دو نفر عادل گفتن مثلا این کتاب نجسه یا این کتاب پاکه یا این کتاب میکبولا نیست بیینه بر خود نجاست نیست بیینه بر بیینه است ایشون جواب نغزه می ان نغز میدن اولا النغز بالاقرار به اقرار و نغز به بیینه بر بیینه البته به طور طبیعی جواب نقضی فی نفس توسعه اشکاله جواب نیست چون میگیم یکی ما اشکال دارم یکی ما هم اشکال داره. خب این اشکال رو بیشتر میکنه باید یکی اشکال کم بکنه جواب نقضی مگر این که اون مطلب بدیهی باشه که بسید با جواب نقضی تقریبی بکنیم به الله جواب نقضی توسعه اشکاله و ثانیان بالحل بعدشون حل میکنن مشکل دارم. و حبا نهو لیسه اونا حکمون شخصیی رو به موضوعات متعدده کار احراز و بعضا مستندن الاسبوت دالکاله خوب ایشون به اصطلاحی که مرهوم ناینی در اصول عبردن این اصطلاح در فلسطه معنی دیگری بوده ده از آن اشکال تره مرهوم ناینی که ایشون خلاف مستدر فلسطه می راست راسته حالا بگیر رو اصطلاحاتش کار نکنیم ایشون بخواب میگن که درست این مطلبی که شما گفتیم. درکه نکته فنی اینه که ما یک حکم به نحوه قضیه خارجی نداریم به طبیر نایمی به نحوه قضیه حقیقی است این صدق العادل نبع العادلی و صدق این یک حکم واحد نیست بگیم یک حکمی شامل خبر کلیمی شد تموم شد این به نحوه قضیه حقیقیه است در اصطلاح مرحوم نایمی وضعیه حقیقی قضیه است که حکم رفته روی موضوع روی افراد موضوع بدون این که در نظر بگیره بالفعل باشن یا در آینده باشن یا در گذشته، هر موضوعی که محقق باشه مثل که میگه الخمران حرام و نجسون اگر گفت الخمر و نجسون این رفته رو عنوان خمر چه الان مقابل ما خمر باشه چه بعد از ده روز پیدا باشه چه خمری که بیس روز قبل بوده مثلا خمر و صرف فلسفه جایی بوده لباس ریخته شده حالا اون خمران نیست خب بازم نجسون اون لباس نجس کرده لباس خودش به خمر نیست این ال خمر نجسون از رو ادبه تحویل مرحوم به تحویل ایشان قضیه حقیقی است ایشون قضیه حقیقی رو در مقابل قضیه خارجی گرفتن علاوه این اصطلاح اصلاح فلسفی نیست دیگه حالا ایشون گفتند و در بعضی جهام یک شرحی و آثاری برای قضیه حدی فراموده من جلو تو بحث اجتماع هم نه که بعضی بحثش قبلا برد حالا اصطلاحی حالا برای اینکه احترام مرقوم ناین حبس بشه اصطلاح ایشان ولی خب خلاف مصطلح قضیه نیست هست اصلا من از که اصلا قضای اعتباری با این درست نمیشه اصلا و لزوم تعبیر مرقوم و اصار این تعبیر تو بحث های منطقم اومده حالا اون درستینه اون الان نمیخوام وارد اون و رضا به تحبیر معموم استاد اینجا البته نگفتن اما خب جادی گفتن گفتن خودمان شد از کرار از ایشون شدیم بضایه حقیقیه رو ایشون ارجاع میدونن به بضایه شرکیه مثلا مهده میگه الخمرونجسون یعنی کل ما صدر علیه پر خارج انده و خمرون ها نجسون ایشون اینجور منامی کرد شبیه هم تو منطق گفتن مثلا الانسان و حیوان و یا الانسان و اون کل ما صدر علیه یه بعضی از منطقی، لاкин خب بعضیام اشتباه که درست نیست، سخت همینه که این درست نیست یعنی ارجاعش به قضیه شرطیه درست. حالا وارد این بحثی می‌خویم بشیم چون جاش اینجا نیست. من فقط یه قاعده کلی رو اینجا متعرض بشم برای توضیح کلام مرحوم و استاد در این حالت که مراد توضیح بدیم تا بعد ببینیم این توضیحات تا چه اندازه مصطلح یا حالا معنا ممکن درست باشه، اصطلاحش درست کار در قضایی ما دو جور داریم خوب دقیقه بکنیم یک جور قضایی شخصیه داریم مثلا میگه به امام سادره از خواب ما اختلاف دارن حضرتون اگه اختلافی شما فعله که باها جالس به یک آه اشاره فرمی پرسته که کسی زرارت نهرین این اصطلاح میکن قضیه خارجیه یه ارجاع به هر کسی ننزدن ارجاع به یک شخص معیلی دارن که زرارت نهرین گاهیم قضیه به نحوه قضیه حقیقی است با تردیر آیم در قضیه در رو موضوع مشخص خارجی نیست هر وقت این موضوع به نحوه از آنها صدق بکنه خوب دقیقی بکنه هر وقت که کرد و اون موضوع میان قضای حقیقی هم اصطلاح های دو جوره درگیری اصطلاحش و این دو جور بودنش اون نکته اساسی فند یعنی اون نکته اساسی فند دو جور بودن این قضای ه در قضای هرجرات مرحوم استاد تعبیر خاص خودشون دارن ما مخصوصش میکنیم با تعبیر فلسفی قضای حقیقی هم دو جوره یک جورش قضای حقیقی به نحو صرف الوجوده یه نحوش قضای حقیقی به نحو وجود ثانیه اصطلاحا حالا استاد بیان کرد وجود مطلق مطلق الوجود میشه تعبیرش اینجوری حالا اون مطلق الوجود در این تازگی هم متعرض شده این شد. دو سه ماه پیش از عبارات خود مثلا حالا ما به جهه مطلق الوجود داریم وجود المطلق تعبیر می‌کنیم به همون تعبیر خاص خودش به نحو صرف الوجود و به نحو وجود ما مراد از صرف وجود، اون جاییست که اون طبیعت به مصداق اول به فرد اول محقق میشه دیگه مصداق دوم نداره یه اصطلاح هم میشه کنیم صرف الوجود مثلا امتصال امتصال از مفاهیمیست که صرف الوجوده مثلا گفت آب بیار شما رو اون آب اول که آورده ای امتصاله ممکنه ده بار شما بریم آب بیاریم ده تا یه بار دیگه آب بیاریم دیگه امتصال صدقه میکنه کنیم اتیان عمر هست امتصال نیست امتصال فقط به صرف وجوده مراد از صرف وجود یعنی به مجرد وجود و اون طبیعت دیگه اون طبیعت تمام میشه دیگه مصداق دوم نداره در مقابل اون وجود ساری وجود ساری نه ما سندگر عادل، سندگر عادل از قبیل وجود ساریه این آقا عادل است، سندگر عادل شما اون آقا عادل, عادل. اون عادی یا عادل صد... عادل از قبیل وجود صاریه. این یه نکته خنی است. در موارد خیلی مهمه. این کلیشی من هستم ساده است خیلی راحته. اما استذهارش در موارد، مثلا اینکه از اشکال دیگر جدید که مثلا عمل حوادث الواقع فرجویی اله راوات احادیثه خب این معناش اینه که هر کسی راوی حدیث که در اینجا مراد صحیحه ایشون ولادت داشته خب جامعه به هم می‌خوادش 40 تا فقیر میگه من ولادت دارم من ولادت دارم ابزار به هم می‌زنن کس در اونجا توضیحش ما از مثلا صد ولادت فرق این دوتا دو چیه جوابش اینه عمل حوادث تعبیر عرفیش یکیه اینجا اتم تاسون مونده و یا صدق العادل فس محله فه اینه و سقت الامین تعبیر و علفیش یکیه نمیکنه میکنه فنزور لامنکان و نفقه این جعل تو ها تعبیر و عرفیش با اون تعبیر ف محله فه اینه سقت الامین تعبیر ظاهریش یکیه اما اینو بحثشون اینه که هر مورد با اون ارتکازات اغلایی ما فرم میکنه مثلا تو بحث فرجع و فیالا روغات احادی سنافه نیجل تو حاکمه ارتکازات و ما مساعده که بخش ولایت از قبیل صرف الوجوده مثلا طبیعت ولایت صرف الوجوده اینطور نیست که ولایت از قبیل وجود ساری باشه هر فقیری که پیدا شد بگه من ولایت دارم. یعنی به عبارت این اخراج چرا؟ چون ولایت به اصطلاح یعنی حالا تعابیر مختلفی از علمای مدرن نمیخوام وارد این بحث بشه حالا یه مثال عرفی‌تر بزنم فرضش مثلا یک ساختمان هست محلیه دانشگاهی هست حسینیه است الان متولی دلش خراب بشه پس توی مملکت ما یک سازمان میراث فرهنگی دلش بشه بگه من بیام به اوضه بگیره شهرداری هم بگه من بیام به اوضه بگیرم فرض کن فلان اداره اوقاف هم بگه من خب 6 تا هفته بخوام با اوضه بگیرم به کار خراب میشه یک ارتکاز و داره اون ارتکاز اینه که یک ساختمانی که الان مسئول و مشرف نداره این باید اداره بشه. اگر اوقاف صلاحیتش بود و آمد موسی صدی شد یک شهرداره حق نداره وارد بشه، چون الان مسئول داره اصلا اون موضوعش ساختمانیست که مسئول نداره دقت بکنیم فرصم با مثال اون با که بلایت مثل بلایت مجانی مجنونی که ولی نداره چون نقصی هست این نقص رو فرصم این شهر داره بیاد که ولی باشتان هم خب این نمیشه به هم میخوره بخش ولایت تصور و عرفی در بخش ولایت به نحر سرپل وجوده نه به نحر وجود سالیه این طور نیست که ارگیزی فقیه باشه با که من بیام متصدی بشه. ولایت در این اساسی که در جامعه نقصی هست نقص در بخش رویت مثل دیوانه و ساختمان نیست نقص در اونجا یک بیان حکم و دینی برای اداره جامعه دو به اصطلاح اجرا و تطبیق کردن اون احکام یک هم بیان احکام کلی دو اونها اجرا نقص اینه حالا اگر فقیه که جامعه شرایط بود آمد دیگه جامعه ای نیست که احتیاج به ولی داشته باشه. پیدا شد دیگه کامل شد. روشن شد پس ما از مثل فرج عوفی ها اله رواه احادیث رو دقیق کردیم. از, از این تعبیر ولو به تعبیر به به قضیه حقیقیه هست. از این تعبیر ما چی میفهمیم؟ میفهمیم وجود ساری. دقت کنیم میفهمیم وجود ساری. بخش منزه. وجود یعنی اگر یک نفر آمد این قیام کرد دیگه جای دوم، سوم، چهار چون... نیست دیگه. ولی عرض کردم این یک مشکلی است که ما سابقا تکرار آن کردیم. ما خیلی از ادله شرعی داریم ظاهرش یک تعبیره اما با یک دلیل شرعی دیگه دو تا هر دو تعبیر یکیه. مثلا ابی مسعود فحت سارق و سارق فقطو با ایدی اونو. دو تا تعریفی که اما اقیم و سلات حجوب عینی تعینی میدونیم حجوب عینی میدونیم اما مثلا این مخاطب به این آهاد مکلدی اما از سارق و از مخاطبین این آهاد مکلدی نیست هم مکلد داره سارقه در ببره مخاطب به این با این حکام یا قضات یا مسعود دقیق می کنیم این یه نکته فنیز حالا بعضی از این تعبیر کردن که اصولا لغت قانونی در مجموعه متون دینی کلی یک نواختنی است و مثلاً می‌بینید چونه؟ در زمان نزول قرآن، مسلم در زیرتر آن قوته قانونی وجود نداشته. ولی خب این دو تا قانون دیگه دو تا چون در دنیای هوی، این دو تا می‌بینیم عقیم صلات رو با فکته و ادیا هماهنگ حقوقی دو تا می‌بینیم. یکی برمیگرده به جامعه، یکی برمیگرده با آهاد مکلدی این دو تا است. لکن مثل همه، این خوب دقت بکنم. یکی از که اصولاً در دنیای اسلام فقه پیدا شده که شگفت بود. اصل یکی از نکات فنیش این بود. یکی از نکات فنی در مباحث زواهرم همینه که ما این زواهر رو از یکدیگر تشخیص بدیم. هم به لحاظ جنبه لفظی و هم به لحاظ جنبه حقوقی و قانونی خودش. مثلا فرجوع فیها اله روابط احادیثی رو ما از این به نفع صرف الوجود میفهمیم. قضیه حقیقی است هر فقیه خصوص فقیه معینی نیست. لكن به نحوه صرف وجود می فهمید. ام دقیقه رو کنی. اما صدق العادل رو به نحوه وجود ساری می فهمید. ولیزا طبیعت کار ولیزا شما اگر یک نفر ولی فقیه آمد به اهده گره یک فقیه دیگه میگه من مخوام با اهده این خرابی داره با شما آرزه وصلا. دیگه حق نداره اصلا دچار بکنه مگر قطعاً باطل باشه اما شما ببینید این نکته فندیش اینه شما اگه صدق العادل داشتید خبر این اغا رو قبول میکنید خبر اون اغا رو قبول میکنید خبر... خبر دوم ممکنه معارض باشه میگه دیگه صدق العادل وجود ساریه خبر معارض هم میگیره دقیق نکته فنی روشن شد میگه صدق العادل وجود ساریه حتی خبر معارض هم میره بله چون عقل میگه که تعبد به متعارض معقول نیست ما بحث میگادیم یا به ترجیح یا به تخییر یا تساوط البته اصل اولی تساوطه که یک وقتی هم توضیحش دادیم روشن شد چی میخوام بگم این نقطه فنی رو چون استاد چه اشاره کردن شهر ندادن این نقطه فنی خوب برستون روشن بشه پس اگر ما قبول کردیم که آیه 90 معناش اینه که و العدل یصدح یقبل این عرضیه حقیقیت خارجی خارجیه نیست این یکی دو حقیقیه به نحوه سرف الوجود نیست به نحوه وجود ساریه وقت در اینجا یه نکته دیگر اینشالله چالا شد بشه البته با این اثبات میخواد فرنه میخواد بشن. یه بحثی دارن آین اصولی ها البته آی خویی که قبول نکردن که اصل در تعارض دو تا فتوا دوتا مشهد، دو تا مشترید جامعه تا سفریه جامعه مشرب با هم فتواشون معارضه، گفتن اصلش این است که شما مخیری. اما اگر دو تا خبر معارض بود، اصلش این است که تساوته. اینو <تصح> گفتن، این چه وضعیه فن چند دفعه هم گفتیم قاعده جزء علم یعرفین، جزء اسرار این فنه که چرا در مشهد یه کمی الان شد براتون واضح شد؟ من نمیخوام توضیح شده احتمالا مثلا در اشتهاد از قبیل سرف الوجوده اگر از قبیل سرف الوجود بود شما مخیری اما در باب خبر از قبیل وجود ساریه اگر وجود ساری شد شما تصاقید <تصفيق> چرا؟ چون وقتی وجود ساری شد تمام اطراد ندر عادل میگیره ولی معارض تمام اطراد نکته فندی رو دارید فکر میکنی تمام افراد ندعه آدل رو میگه ولو معارض با که چون تعدده رو متعارضه نمیشه اصل اولی تساغازشون چون خبر شعنیتش طریقیت صرف هم هست چون شعنیتش طریقیت صرفه و ادله حجیت اگر قائل به خجیت شدیم شامل همش این نکته خوبه به نحوه وجود سالیه صدقل عادل به نحوه صرف وجود نیست. اگر به نحوه صرف وجود بود شما خبر زراده قبول کردیم. بعد خبر محماسه مخالق بشه. من دیگه میگه خبر قبول کردیم. خب نکته فندی روی زرافت فندی رو اگر شما حجیت خبر واحد قبول کردیم این حجیت خیلی مطالبی کنم خیلی لطیف و ذریف و اگر اوش کار بشه. این حجیت به نحوه صرف وجود نیست. دقیق این نیست که شما یه خبر قبول کردیم بگیدیم من دیگه خبر معارض قبول نمی کنم. چون همون دلیلی که می گفت خبر اول قبول کن شامل معارض هم میشه، چون این هم وجود ساریه یک جاهایی به نهر صرف وجوده، این صحبت هست که آیا فتوه فتوهی فقی به نهر صرف و ولذا اگه دو تا فقیه متعارضان یکیشه قبول می چون اون عدله حجیت میگه تو الان موتعایید رو نمیدونی فنی نمی‌دونید. آقا مراجعه که تمون شد. دیگه این نمیاد بگه به دومی. به هر وسیله وجود ساری نیست که به دومی هم مراجعه کن. مثل ولایت میشه خوب دقت کرد. شبیه ولایت میشه. این هم که بعضی گفتن تقلید یک نهبه از ولایته. حالا یه نکته دیگه ای داره. این روشن شد چی میخوام بگم؟ اگر تقلید رو شبیه ولایت گرفتین سر وجود میشه. اگر سرکل وجود شد نقیقش اینه که در تعارض تخیره <تصفيق> اما اگر به اصطلاح فتوه رو مرحوم های خوی رو از قبیل به اصطلاح وجود ساری گرفتن یعنی از علیه حجیت فتوه فقیر رو شامل هر دو میدونن و چون متعارضه این هست تعبد متعارضه معقول نیست تصابت کن اشان مقال به کسانی که در رساله های عملیشون نوشتن که اگر دو تا فقیه هجام و از هر دو از دیگران علمه و اینها با هم تا کردن شما احتیاط بکنید اینا اون رو از قبیل وجود ساری گرفتن اگر گفتن مثل آبه احتیاط بکنید بگن رفت هر کی گفت شما احتیاط بکنید چرا؟ چون تصاقات گرفته مثل خبره این دوتا متساقیت میشن چون یکی بشن هم شما احتیاط بکنید اما اگر ما از قبایل سرپل وجود گرفتیم میگه مخیری نمیگه احتیاط بکن اونم میگه بین دو تا که در اصله خویم اومده میگه بین دو تا فقیر. شما احتیاط بکن در صورت تهاجمی دو نفر فقید که هر دو مثلا فرسیم بمونن دقت میکنید میگن احتیاط بکن این احتیاط نکته چیه اینه که ایشون فتوا رو از قبایل خبر گرفته قائل شدن که تساقات میکنن چون اهداه ما حجت شما به هر دو عمل بکنید این احتیاط مناشید اما از مشهور بین علماء اهل سنت و بین فقال اصولین ما این آن عرصه دیکیم متاخیریم و الا مشهور بین این ها در تعارض در فتاوا اصل تخییره نه اصل تساقاته یک مقداری این روز نکته گفتیم این نکاتی دیگه هم داری تا در اگر فرصتی بود داری چیه پس تنابراین این رو فکر بکنید که حجیت فتوای فقی از قبیل حجیت خبر اگر صرف الوجود بود اصلا متعارضه نمیاد همون اولی رو میگیره از قبیل امتصال از قبیل بلایت از نقطه فنی رو چند شد پس هر چیزی که از قبیل صرف الوجود باشه خایناتهایش مشکل که آرز نمیاد چون شما فتوه این فقیه رو تموم شد دیگه فتوه فقیه رو جبه فقیه به جهت جهالت به جهتی که نمیدونی به این فقیه عمل کرد میدونی تموم شد دیگه نکته ای نداره این دلیل نمیگه تو فقیه دوام مراجعه کن اصلا دیگه جای رو جبه فقیه دوام نیست دقیقه نکته فرمی این خیلی ضریفا خیلی لطیف. اینه که علمای اسلام مثلا ها و بزرگان ها شیعه. در تا آرز در فتوا تخییره در تا در در روایت تصابطه این یک زرافت های لکیفی داره در باب خبر بله بعضیان بعض چون خبر رو قائل به موضوعیت هم. یعنی اگر خبر زراره آمد طبق خبر زراره حکم جهز میشه اگر قائل به موضوعیت شدیم اصل در خبرم تخییره چون اگر غالب و موضوع شدی، اونجا هم میشه صرف الوجود یعنی وقتی زراره یک مطلبی رو گفت خیلی روایت زراره حکم واقعی میشه پس من حکم دارم اگه حکم دارم دیگه به خبر محمد موسیل مراجعه نمی کنم. حکم دارم دیگه روشن شد نکه فردی با عمل به خبر زراره یا با عمل به خبر محمد موسیل من حکم دارم وقتی حکم دارم به دوباره مراجعه نم حسنا در این خیلی از ذرافت ها هست در اینجا باید مراعات بشه که آیا حجیت خبر به نحو قضیه حقیقی است یا به نحو قضیه حقیقیه است و این اصطلاح خارجیه نیست و به سری زراره به نحو قضیه خطاب ما در بحث حجله خبر کردیم. از کردیم جمله از روایاتی که آوردن اصحاب ما برای حجله خبر از متأخرین 18 تا روایت بود ارجاع به ابو بسیر و ارجاع به زراره و ارجاع به برید ارجاب اشخاص و معاین از اونها موارد قضیه خارجی است. با اونا نمیشه در خبر تمسو کرد پس قضیه حجید خبر قضیه به نحوه حجیده به نحوه قضیه حقیقی است. این عمل کلام یکی از بحث موز خارج میگوی دیم مطلبی فرموزن آیا به نحوه صرف وجود اخذ شده یا به نحوه قضیه وجود ساری اخذ شده اگر طریقیت صرف گرفتیم طبق قاعده به نحو وجود ساریه اگر موضوعیت گرفتیم یعنی طبق خبر حکم جعل میشه جعل بدل قائل شدیم طبق قاعده صرف وجوده. اما تو ارز الان در کلمات و اصولی ما همشون س... وجود ساری گرفتن این وجود ساری چون مسلم گرفتن که خبر طریقیت داره این مسلم شده در میان اهل سنت داریم به در پیش شما چون مسلم شده که خبر تریقیت داره به نحو وجود ساری شد روشن شد پس یک به و ازی الهی است دو به نه وجود ساری اینطور نیست که یک حکم باشه به یک موضوع که محقق شد یه تمام بشه نه این حکم هست سد بالغاده یا نبع العادل و سد ده این حکم هست الان که به قول آیشون خلیه اینو میگه حدثنی علی بن رایی نبا قول عادم خلیه یو بعد از این که این تعبد آمد یو صدر یک مصداقی در اینجا پیدا شد. اون مصداق قول علی بن رایی حدثنی علی پشکال نداره چون قضیه خارجیه که نیست قضیه حقیقی است به نحوه سرف الوجود نیست خوب روشن شد به نحوه وجود ساریه نه به نحوه سرف الوجود بعد از این که مرحوم کلی با حدث علی ابن ابراهیم الان برای ما نبع صادق صدق نبع علی عادل صدق می میکنه به کلام علی ابن ابراهیم حدث عنی عبید. الان یک نبع علی عادل جلو ما درست شد خب چون به نحوه سرپل وجود بود نبع علی عادل صدق حکمی ها شاملش میشه. بعد از که حکم شامل این شد باز یک نبع دیگه درست میشه و اون کلام ابراهیم هاشم حدث عنی نوفری و حدوم جرام این مراد مرحوم و استاد. پس درنابراین این اشکال قابل دفعه. ایشون میفهند ثانیه در بالحل و ها نهوله ای حکم شخصی. این مراد از حکم شخصی عبارت از به اصطلاح قضیه خارجی خارجیه. موضوعات متعدده کان احراز و بعضها مستنده لا ثبوت اضاله کل حکم. چه حکم نیست که یکیش متوقف دیگری باشه. حتی اتوجه هل اشکال مذکور ف این نهوجیت خبری من ملاقاتشان را برای توضیح مشغولشان به نحول قضیه حقیقیه. کم ماه حال فی سال احکام شریع در مصلاح فلسفیش قضیه رو روحفر اصلا نظر نداره. اگر روحفر نظرش رو نظر خارجیس، این اصطلاح خاصم هم نیست. از اصطلاح فنی خارجه یه نمک مال وادیم بحثش. چون اسکم اطلاعاتش روشن نیست. ویه هیچ منحلشان احکام متعدده حسب تعدد موضوع. علامه هو و شعر فل قضیه از عذردم اینو توضیح نشو اینجا استاد توضیح مفصل ندادم من از کردم خود مرحوم ناینی و مرحوم استاد استاد فی خود اون در درک زیاد چنید این که میگه یعنی هر چون ایشون به نحو قضیه شرطیه یعنی قضیه حبیبیه رو مراجعش به نحو قضیه شرطیه زد این درست نیست قضیه شرطیه حقیقتی داره قضیه حمدیه حالت دیگری داره در منطق این مطلب درست نیست علایم به هر حال بازوازیل بحث اندی رو خیلی بشیم خداواده در محلش نگاه بکنن اصولاً هیئت رخد خودیه هر جایی الا موقعه شأن و فرقضا اله حقیقیه این مراد ایشون به شأن فرقضا اله یعنی انحلال پیدا میکنه البته این انحلالن ایشون آثاری برش بار کرده اینطوری نیست که بیا اثر باشه دیگه ای حال اینکه اختوا تط درست, درست یا جوسی نیست اینجا الا موقعش نیست البته ایشون تعییر میکنه که این شبیه قضیه خارج شخص چیز مشروطه است یعنی کل ما صدق علیه ما صدق یا کل ما صدق علی خارج یا کلما ما رو مبنی بر فتح بخونید یا کل ما مرفوع بخونید کل ما مرفوع باشه محصول کتابتا محصوله کلما اگر کل ما به مبنی بر برفعت... اون مبنی میشه وقتی مال نیست مبنی بر فتح میشه اون متصل میشه به ما ما زائد است. کلما ایشون برمیگردیم به یک نوع قضیه از کردم در منطق هم ایده از قضیه معاصیل هم مثل بئر فرس رسوله برایش همینه که ال انسانو مثلا ناطقه حیوان کاتبون ال انسان کاتبون مرجعش بینه که کلما صدق علاشه انف الخارج عنه انسان کاتو روشن نیست این مطلب اون در منطق روشن نیست واسه در اصول فلا محضوره فی ان یکون ثبوت الموضوع بله ثبوت الحجیه خبر کلمی موجبن به احراز خبر من یرمی انهال کلینی قدسه رو فیتره تبا علیه فردون آخر من الحجیه چون انحلالیه. حالا این فردان آخر من الحجیه این رو باید استاد توضیح میدن که متاسفانه ظاهره بله لا این الحجیت ساب... نه لا این الحجیت ثابت لخبر کنه نه این درست نیست باید جور دیگه میگفتن باید میگفتن این قضیه حقیقیست و به نحوه وجود ساری ه چون اگر به نحو سرکل وجود بود اونم داشت. لا این الهدیه و ثابته لخبر کلنیق رد دسته را علاقی بها احرز خبر و ها که در حال به نسبت الى آخر سلطه روا البته اگر به نحو وجود الوجود باشه، ممکن دوبارم هم شامل بشه اون در تعارض محصر در اینجا من است. و که در حال فل اقرار فل اقرار فل بیر فل بیر و لا حاج فعل دیگه احتیاج به آز ارز کنم که ما حالا بحث نشالا بعد خواستی روز تامن بکنیم تامنشه روز اشکال اول گیر کردیم من قبل از این که من جواب بدم که اصولا اصلا این اشکالی رو که اینجا مطرح شده و جوابی رو که مرموع خویی و مرموع ناینی و دیگران دادن آیا این قابل قبول هست یا قابل قبول نیست ببینید یه مطلب اصل اشکال رو اصل کلام رو یشون میگه و فل مقام الخبر المهر از لَنَا بِالْبِشْدَانِ خبر کلینی. اینکه کلینی میشه حدس علی ابن ابراهیم این مهره از بیش دانه. اما اینکه علی ابن ابراهیم میگه حدس زنی این مهره به بتهاباده. تا آخر اینکه سكونی میگه حد سمت چه صادق علیه سامیا هود اینم مهره از بتهاباده. کلام سكونی. ببینید دقت بکنید من عرض کردم یه مقدار اشکال در بعضی از فرهنگ ها رو حساب خاص خودشه اشکال اخبار معلواسه، اصلا قبول خبر و علم قبول خبر در مکتب عقل گرایی. بیشتر روی علمای اهل سنت معتظره اینها بود که خبراشون در مقصد عوائلش به نحو شفاهی بود اما اصولا در, در کلمات اصحابه و در خیلی از میراث های عثابه ما که به نحو کتبیه و به استداده ونده به نحو فهرستیه اصلا این مطلب تصورش خیلی قریبه خیلی قریبه تا. اصلا ایشون میگه خبر کلینی حدسانی علی بن ابراهیم محرزم به از کجا محرزم بشه اینسان کی ببین کتاب مال کلینی اصلا از کجا شما در کتاب کلینی بیوی شماها باالتا اغلب که این کتاب چون نسخه های متعددیه دیگه چطور بین ما الان که من در خدمت هستم، کاری زدم اول اولش مثل ذلذ عریضه تا با کلهینی با تاریخ پروتوکولی 1106 سال فاصله از الان 1935 دیگه 1329 یا 1328ستون وقت کردم 1106 سال فاصله بین این لحظه ما با زمان است شما این که در کتاب کلینی آمده میگه حتی علی بن ابراهیم میگه محرزان بلویستان کلینی هم کتاب سکودی بیشیش بوده که این مجرد طریقه بین فوت کلینی با فوت سکونی 150 ساله این محرزان بلویستان بود محرزان تبده بودتت بگنید اصلا این سمخ بحث که انسان بینیسه قول که قول کلینی حدثنی علی بن الی ابن الرهیم این مخرجون بلبشدان اما اینکه سکونی گفت حدثنی علی ماوسادی ثروت صادره علی اساق بقول این مخرج به تعبد به همین ترتیب که ایشون فرمودن خب چیز عجیبی نمی‌کنه زمان که عوض نمی‌کنه مرحوم کلینی هم از کتاب سکونی گرفتن بله ممکن است بگیم مثلا این کتاب رو ایشون یک سند گفته با این یک سنت چی اثبات درسته ایشون یک سنت درسته اما این معنیش این نیستی که در اون زمان قراره هم یک سنت داشته نسخه متعدد داشته چون اولین نسخهی که در قبامت توسط ایرانه هاشم بود این نسخه بیشتر نعروف شد تصادفا خود این نوفلی که راوی این نسخه است بعدها ساکن ری شد من در بحث سکونی متعدد شدم اده از خود علمه های که مثل احم علایه حاله نسخ متعددی داشته اینا این تریبی سینا نهاره کرده لذا خوب دقت بکنید این اشکال اخبار معلو روی مسلک رجالی ها پیش میاد چون همه سماه هم. اما روی مسلک فهرستی اصولاً یعنی واقعا خب این سؤال میاد که خبر کلینی حد با فاصله 1160 سال این محرز اون بلویجدان میگن فعلا محرز دیدن آن بلویجدان خبه خبر کلینی این محرز بلویجدانه اما کتابی که 150 سال فاصله بین فوت دوتا معلف این کتابه این باید بشه محرز به تعبود به سه چار واسده یکی علیه بنرائیم از پداشتی که پداشت از نوفلی از سکونی تا بشه سکونی از امام س فکر کن کتاب در, در نباشه, درس کلینی هست، کتاب اون در درس سوم نیست. نباشه، ولی درس کُلینی بوده. همونچن که مؤرذانم بلژیک، مؤرذ بلکلینی کتاب کُلینی رو کتاب اون رو که نمی‌دونی. به در اون زمان کتاب مؤرذ بلژیکان، اگه کتاب کلینی از زبان مؤرذ بلژیکان در اون زمان هم برای مؤرذ بلژیکان، ما که می‌خوام باش تمام ما تا آموزش به اخبار کلینی، وقتی این قضیه دیگه، این قسمتش قضیه. <متزوج> <مجمع دیت برقیم. متزوج> چون که مورد ما از چون شخص معذنی نیست این کتاب قطعاً در باب مشهور شده چون محمد بن احمد ذکر میکنه سردازش نمیکنه سفر نمیکنه علی الا ما شاء الله نه یعنی اینکه چین کتابی مورد سکونی بود در اون زمان قطعی اینجا بحث نداره. این مجرد طریقه این مثل اینکه بگه کلینی چاپ فلان شما میگه این که گفت چاپ فلان پس یعنی مشکوکین نه این نسخه هست اگر کتاب کلینی محرز بلویجان برای ماست یه دفعه میگید نه کتاب کلینی تاریخ میخواد ما این رو محرز بلویجان شما از چه نسخه ای گیرستی؟ این نسخه بر چه نسخه بوده؟ یه دفعه همین کار رو اونجا را انجام میدیم دقیق کردیم یه دفعه نه این تعبیر که خبر کلینی الان محرز بلویجانه برای ما ببینید که دقیق بک خب این که کتاب سکونی هم محرز بلوشدان برای علمای قومناری یک نفر که نیست به خود تو کلی این کتاب سکونی وجود داشته مروم شیخ توسی هم به دو و به دو طبقه بردست کنی ادعای اجماع اصحاب میکنه بر عمل بر کتاب این طور نیست پس بنابراین این, این متلب اشکال اخبار معروباست بله فرض این کتاب حریز که مسلم در افتیار اصحاب بوده خودش از امام صادق ننوشته از زراره از امام صادق ممکنه در اونجا شما مثلا بگیم بله این احرازی این که این کلام امام صادق له خورده باکن مثلا خود همین کتاب حدیث با اینکه با یک واسطه از امام صادق اول این کتاب در کوفه نوشته شده خود زراره حتما دیده خود زراره انکار نکرده پس کنا میشه کلام زراره وقتی خود راوی انکار نکنه کنا مو کتابونه مظافر در اون روابط صحیحه هم ما خدمت امام صادق عرض میکنه امام میفرماین برای نماز اون گفتم انی احرز کتاب حریص الصادق یعنی کتاب اینقدر مشهوری که به امام صادق یاد رسیده پس اگر این باشه تقریبا میشه انسان بگه که این محرزه بلوجانه یعنی این مطلب محرزه بلوجان بوده که زرارش این مکلدی از امام صادق را کرده اینقدر این کتاب شهرت پیدا نه بحث اینه چطور شما میگید الان کلینی که میگه حدثنی علی بن ابراهیم برای ما محرز بلوشدانه اما وقتی کلینی میگه حدثنی علی بن ابراهیم انعبیه انحماد انحریز انزراره روی عبدالله کتاب حریز بودن این محرز بلوشدانه قطعا شواهر برای اینکه که خود کتاب موجود بوده تا سالها بعد از کلینی هم موجود بوده زمان صدوق بوده زمان مرحوم ابن ادریس ازش نهر بعد از ابن ادریس هم موجود بوده. پس این بگیم نقل از این کتاب مثل نقل یکی زیز که ابن از کتاب کلینی میگه. چه فرم میکنی؟ چه چطور شما کتاب کلینی رو محرز بیدویجدان می‌دونید؟ اون کتاب ها به طریق اولا محرز بیدویجدان هست ازا خوب دقت بکنید بحث اشکال اخبار محل واسه روی مبانی رجالی ممکنه متعمد صد مصور بشه به این نحه روی مبانی فهرستی تصویرش فیقات اگر بناس اونجوری مبانی فهرست تصویر بکنه باید مثلا نگین کتاب کلنیام مهرز بلوی زاده اینم تعبده اینم با تعبد میگه می چرا چون از یک نسخه که تاریخش 1200 بوده اون از یک نسخه‌ای که تاریخش 800 بوده اون با اینجوری میگه می هم اخبار ملوان سجاد بیاد بحث من اینه ایشون که میگه خبر کلیلی مهرزان لنا به مجدان چطور مهرزان لنا به با این فاصله زمانی و این کتاب ها که در اون وقت احکام دینی بوده در قام مشروع بوده در کوفه بوده در بغداد بوده این مثلا به تحبت با خیم بکن بکنم اشکال سر این رسمه رسال الله و, و محمد رو. از این اشکال مختصری سر بعد ارزی میکنم که اصل اشکال چی اینشالا بعد ارزی میکنم